جمع بغية الله في الأرضين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم السلام عليك يا بغية الله في أرضه وحجته على عباده ورحمة الله وبركاته وسيكم عباد الله ونفسي بتقب الله خط وشماره إلى آية تقباء الله وبركاته و خداوند دعوت میکنم از نگاه مردم ارزش گذاری اعمال بر اساس زواهره ولی از نگاه دین اعمال و نیتهای مردم رو می ظاهر عمل باید با تقوا و نیت خالص همراه باشه لذا مردم خوب و بد اعمال رو بر اساس زواهر قضاوت میکنن ولی خداوند متعال که عالم و الخفیات است ارزش اعمال رو بر اساس تقوا میفرماید در قرآن قد افلح من تذکا اون کسی که به تذکیه به او به فلاح و رستگاری رسیده برای پاکیزه شدن باید تقوی الهی رو پیشه کرد برای تحذیب نفس باید از تقوی مدد گرفت امیر علی علیه السلام می به تغوا تزدک کل اعمال به وسیله تغوا رفتارها پاکیزه میشه. در وسط متقین فرمود المتقون اعمال هم زاکیه انسان‌های متقی اعمالشون پاکیزه است از خدا بخواهیم و از اهل بیت علیه استلام مدد بگیریم به این گوهر ارزشمند رو در خود ایجاد و تقویت کنیم بحث تفسیرمون پیرامون آیه پنج سوره ممتحنه بود که حضرت ابراهیم به درگاه خداوند ارزمی دارد ربنا لا تجعلنا فتنتا للذین کفر و پرودگارا ما را فتنه برای کسانی که کافر شدن قرار مده بحث این بود که در قرآن کریم برای فتنه مصادیق گناگونی ذکر شده است آیا حضرت ابراهیم کدام از این معانی را اراده فرمودند؟ در خطبه قبل عرض کردیم یکی از معانی فتنه آزار و عذیت و شکنجه بود و برای همین اساس کلام حضرت ابراهیم را تحلیل کردیم اینک معنای دوم برای فتنه احتمال دومی که درباره معنای فتنه داده شد این است که انسان به بلاها و گرفتاریها وقتی مبتلا میشه میگن به فتنه افتاده ممکنه حضرت ابراهیم از خداوند متعال میخواهد که ایشان را به بلاها و گرفتاریها مبتلا نکنه تا کفار و مشرکین از روی شماتت و زخم زبان نگن اینا اگه بر حق بودن مبتلا و گرفتار نمی شدن. این احتمال هم البته دور از انتظار نیست زیرا حرف و حدیث ها و حرکت هایی که از روی شماتت و زخم زبان از طرف مردم گفته میشه خیلی سخت و طاقت فرساست در قرآن کریم هایی در این باره وجود دارد جناب هارون برادر حضرت موسا علیه السلام و علیه مستلام وقتی که حضرت موسایشون رو جانشین خودشون قرار دادن و برای گرفتن الواح و بمیقات رفتن و سی شب شد چهل شب خب گسال پرست شدن قوم حضرت موسا و از هارون هم کاری بر نمی آمد وقتی حضرت موسی برگشت و دید قومش گمراه شدن خیلی نراحت شد اول کاری که کرد یقیه برادرش رو گرفت و او رو معاخزش کرد موهای او رو گرفت با او برخورد خشنی کرد جناب آرون به برادرش ارز کرد فلا چشمت بیال اعدا و لا تجعلیم القوم الظالمین پیش چشم دشمنان به من شماتت و من زخم زبان نزن به من برخورد نکن مردم شماتت میکنن زخم زبان میزنن با این رقم برخورد زمینه رو برای حرف مردم فراهم نکن خب وقتی که حضرت هارون این جمله رو هم به عنوان عذروخویی بر اینکه به حال حرف من تأثیری در ایران نداشت یعنی من به وظیفه عمل کردم ولی به حال این برخورد حضرت موسی با جناب هارون به قدری ناراحت کننده بود که حضرت هارون بیش از این برخود از شماتت مردم و زخم زبان زدن مردم اظهار نگرانی کرد نمونه دوم حضرت ایوب برای این مسئله هست این پیامبر الهی در یک قسمتی از زندگی پربرکت خودشون مبتلا به بیماری سختی شدن فرزندانشون فوت کردند، دامه ها و اموالی که داشتن ایوالات از بین رفتن وقتی این مسیبت ها و گرفتاری‌های های پی در پی برای اون حضرت بشومد مردم هم دیگه از دور حضرت عیوب پراکنده شدن تا جایی که همسر با وفای عیوب هم برای امرار معاش خودش و حضرت عیوب مجبور شد در خانه های مردم کار کنه خیلی کاربرین پیامبر الهی سخت شد ولی در این میان زخم های مردم از همه بیشتر ایوب را آزار میداد. مردم می‌گفتن اگه از ذات ایوب برحق است اگه پیامبر خداست اگه راست میگه چرا این همه برنج و بلا مبتلا شده هیچ کمکی هم خدا بهش نمی‌کنه ملاحظه می‌فرمایید من از اقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم من از گرگی که رفته در لباس میش می ترسم در اینجا بود که حضرت عیوب با همه سبری که داشت به خدا کرد و درخواست رفع مشکل کرد قرآن می فرماد و عیوبه از نادا ربه او ان نیمستنی از ذر و انت ارحم و راحمین من آسیب و ضرر سختی دیدم تو ارهم الراهمینی خداوند هم می‌فرماید: فرماید له فكشفنا ما بهی من ظرم و آتیناه و اهله و مثله معهم من عندنا و معه رحمتا و خدا جبران کرد همه ما فاترو و آنچه که از دست جناب عیوب رفته بود به او برگرداند و همه اینها رو خداوند می ما مایه تذکر و پندی برای عبادت کنندگان قرار دادیم از اینا سختتر در زندگی حضرت عیوب وقتی بود که شیطان حضرت ایوب رو شماتت می و آزار میداد تا حضرت عیوب رو از رحمت خدا معیوز کنه قرآن می فرماید ودکر عبدنا ایوب اغناداربه انیم سنی شیطان و به نصب و عذاب خیام برا بنده ما ایوب رو یاد کن هنگامی که پروردگارش رو ندا داد که شیطان به سبب رنج و مصیبتی که دچارش هستن برای سرزنش و شماتت میکنه نمونه است دوام حضرت مریم سلام الله علیه است در مسئله حامل شدن ایشون که غیر طبیعی حامل شدین بزرگوار خب این مسئله از زخم زبان مردم و جسارت مردم روبرو شد با اینکه حضرت مریم میدونست این لطف خداست که روح القدس در او دمیده عنایت و لطفی از طرف اختاله به این بزرگوار میشه که ازن تا ابد آثار برکاتش نمونه اما این زخم زبان مردم تلخ و سخت بود حضرت مریم گفت یا لایکنی مت و قبل ذا و کنت نسجن منسی یا ای کاش پیش از این مرده بودم و از خاطره ها فراموش می شدم بنابراین بعید نیست که حضرت ابراهیم وقتی به خدا عرض می کند ربنا ناتجعلنا فکتتن للدین کفرو در واقع از خدا می خواد که خدا حضرت ابراهیم رو از شر زخم زبانها و های مردم به لحاظ این که به گرفتاری و سختی مبتلا شدن نجات ده و از مولای ما زیندالعابدین و امام العارفین از دست سجاد سلامالالی هم نقل شده که در این داستان پر حادثه ی کربلا وقتی ایشون به شام رسیدن شام بر امام خیلی سخت گذشت نقل شده که ایشون این جمله رو فرمود یالی تنی قم لم ای کاش مادر مرا رو بود و نمع یزید یرانی پل بلاده استی را و یزید من رو به یه حالت استارت نمیدید خیلی تخش ترخ شد بر اهل بیت سفر شام نرخ شده که اهل بیت عبا عبدالله علیه السلام رو سه روز پشت دروازه های شام نگه داشتند چرا؟ برای اینکه شهر را آزین کنند آماده کنند برای جشن و شادی شام چهر سال تحت تبلیغات معاویه به اسلامی که او خواسته بود بیشتر مسلمونها اسلام بنی اومیه رو داشتند همون که حضرت امام به عنوان اسلام آمریکایی در این زمان یاد میکند اسلام اسلام بنی اومیه بود مسیحیانی بودن که تازه مسلمان شده بودن او هم در طول این چهر سال تا توانست بغض امیر المومنین و اهلویت پیامبر رو در دل مسلمونها قرار داد. معاوی از همین مردم لشکری ساخت با امیر جنگی روز اول ماه سفر سر مبارک عبا عبدالله السلام رو همراه با کاروان و وارد شام کرده. حضرت زینب حقیله بن حاشم علا رغم میل باطنی خودشون با شم صحبت کردم و او فرمود دو تا خواسته از تو دارم یک ما را از محلی و دروازه ای وارد شام کن که جمعیت کمتری باشن چشم نامحرما کمتر بیفته دوم سر شوهدا را از بین زنها بیرون ببر تا مردم سرگر به نگاه سرها بشن کمتر به زنها نگاه کنن شمر نانجیب هم با هر دو پیشنهاد بیبی بی بر عکس عمل کرد دستور داد اهلویت پیامبر را از دروازه اشتاهاد که سلوخترین دروازه ها بود وارد کردن و دستور داد سرهای شهدا رو هم مقابل هر زنی که با اون محرم و آشناس ببرن سر علی اکبر رو مقابل مهرمهاش سر جناب قاسم رو مقابل مادرش سر عبا عبدالله رو مقابل بیبی زینب در دروازه ساعت نقش شده چندین هزار نفر برای تماشا و شادی آمده بودن مردم، مسیر دروازه شام تا کاخ یزید زیاد نبود ولی از اول صبح تا قروب طول کشید تا این کاروان به کاخ یزید رسید چون در بین راه مردم ازدهام میکردند، جسارت میکردند، خاک و خاک سر بر سر اینها میریختند وقتی که این کاروان و در مسیر به محله یهودی رسیدند معموران یزید به یهودی گفتند اینها خانواده همون کسی هستند که با شما جنگیدند در این هنگام جسارتها و تشخاب سنگ ها و ریختن خاکستر آتش بر سر اهل بیت شروع شد اما از همه بیشتر و سختتر وقتی بود که سر بریده اما عبدالله به محله یهودی رسید اونقدر به این سر عادت کردن من از گفتنش عاجزم اما همینقدر ارز کنم وقتی شب سر بریده عبا عبدالله به دست دخترش رو غیرستید صدادت بابا فدای سر نورانیت سنگ جفا شکست پیشانیت خیلی به اهل به اتصالت شد تو این مسیر یه وقت این نگاه کردید سر بریده عبا عبدالله چشمالشون بسته است صدادت انظر الین آیم نتاها یعنی و یاسین حسین من، چشمهای این همه نامحرم به روی ما بازه برادر تو دیگه چشم تو به روی ما نبند شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید ساز با ناله زرگی زهرا نزنید سر مردان خدا را به سر نیزه زدید مرد باشید دیگر سنگ به زنها نزنید زنان بر سر بازار اگر سنگ زدید دختران را به کنار سر بابا نزنید علی و فاطمه در جمع شما استادن پی چشم علی و فاطمه ما را نزنید کشتن فاطمه بین در و دیوار بسد تازیانه به تن زینب کبرا نزنید اللهم لعن أول من ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا اللهم عجل لوليك الفراج اللهم عجل لوليك الفراج اللهم عجل لوليك الفراج والعافية والناسر اللهم اجعلنا من خير انصاره و اعوانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احاد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احاد صدق الله العلي العظيم على محمد. على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله فنصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين اللهم صل على مولانا علي أمير المؤمنين ومسي رسول رب العالمين وصل على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين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 سالابو الله عليه و على آباءه الطاهرين لتقربوا إلى الله بحبهم و من أعدائهم السلام عليك يا بنت موسى بن يا فاطمة المأثمة ورحمه الله وبركاته اوصيكم عباد الله ونفسي تقبل الله ترين خد بنيز شما رو به رايت تغواي الهی دعوت میکنم امام مهدی علیه السلام فهموندن من یتقى یتقم اگر کسی تقوا پیشه کند دیگران از او می‌ترسند و من اطاع الله هر که خدا رو اطاعت کنه دیگران از او اطاعت می‌کنند و من اطاع الخالق لم یبال سخت المخلوقین کسی که خدا رو اطاعت کنه دیگه از عصبانیت و ناراحتی و خشم مردم به دولت ها و قدرت ها نمی و من از خط الخالق فل ییقن ان یحل بهی سخت المخلوقین و چنان که انسان خدای متعار رو با معصیت به خشم بیاره باید بدانه که مورد خشم و دشمنی انسان ها قرار خواهد گرفت بنابراین انسان متقیب در همه عرصه به خصوص در عرصه های سیاسی و نظامی جز از خدا از هیچ کس نمی ترسد و قاطعانه می ایستد و حرف خودش رو می زند و از هیچ کس هم باک ندارد مناسبت ها پنشنبه بیسته هفت مهرماس در روز سفر استانی رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه این مدرزله العالی به شهر مقدس قوم در سال 1389 بود سفر به قوم همواره در نظر رهبر معظم انقلاب دارای جایگاه بیجه ای بوده این سفر از جنبه های مختلف مادی و معنوی دارای آثار و برکاتی بود که همه ما قددان ولی فقیه زمان اون بوده و هستیم و الله طی این چندین سال که رهبر معظم انقلاب لطف کردن دختر معظم الله انایت کردن و در موزه دیگ مردم شریف قم رو تعدادی رو به نمایندگی از همه میپذیرند و مهمترین فرمایشات خودشون رو در دیدار با مردم قم بیان میکنند انشاءالله که امسال هم با آبرومندی و عزت و سلامت این سفر انجام شود و مورد انایت رحبر معذر انقلاب بردم قم قرار بگیرند انشاءالله شنبه بیتونه مهمه مصادفه با اول ماه سفر سه مناسبت رو داریم یک برود کاروان اهل بیت در این به شهر شام در سال 61 دوم وفات عالم و فقیه عامل مرحوم آیت الله حاشق محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان در سال 1392 است شخصیتی که از ابتدای نهضت امام متواضعانه و فداکارانه امام و رحبری را حمایت کرد نصرت کرد رضان الله تعالی علیه سوامین مناسبت در روز بسنوه مهمار روز استادرات که به همه بخش‌های سنعتی توصیه میشه محصولات خودشون رو باید با محوریت استادرات و با داشتن استانداردهای های لازم تولید کنن هم برای مصرف کننده و هم برای اعتبار و آبروی کشور و محصولات ایرانی معصد است. سوامین دوشنبه اول آبان ماه و سوم ماه سفر سال روز میلاد فرخنده امام باقر علیه السلام در سال و هفت هجری قمری است. پیشوایی که میراث عظیم فقهی و فرهنگی و سیاسی امام مدیون قال الباقر و قال صادق است اما امام معصومی که در سن طفولیت حادثه سنگین آشورا و صحنهای سخت اون رو از نزدیک مشاهده فرمود از امام باقر علیه السلام درباره ادب سیر و سلوک و تهذیب نفس روایت شده که فرمودن من لم يجعل الله له من نفسه واعظا فإنما واعظ الناس لن تورني عن کسی که خداوند براش از نفتش پند دهنده قرار نده پس مستلما پندهای مردم ذره ای در او در نخواهد کرد ابتدا باید واعظ درون نفس خود انسان باشه تا واعظه بیرونی به مدد واعظه درونی برای تحضیم نفس انسان تلاشه همچنین اول آبان ما ساروز شهادت فرزند برومند و فقیه حضرت امام قدس سقروح مرمومات الله حجام مصطفیه است که در نجب اتفاق افتاد بدن پاک آن بزرگوار در حرم مطهر از دعمیر سلام داره آرام گرفت شهادت ایشان خون تازه ای در رقیه های نهزت حضرت امام جاری صاحب منشه تحولی عظیم گشت آری این نهزت از همون ابتدا به زعامت مرجعیت شیعه و علماء از این مشتعن و شخص حضرت امام و همراهی امت حضبالله شکل گرفت اولین شهدارم نیست خود علماء و روحانیون تقدیم کردن از بیت شریف حضرت امام همین انتظار هست که شخصیتی مثل حاجه و مصطفی عزت این به کرامت این بیت و حفظ کرد و ما این رو میخواهیم که این بیت شریف همچنان پاسدار حریم قرمت امام باشد روز اول آبان ماه روز آمارو و برنامه ریزی هست باید اونها که اهل برنامه ریزی هستن برای دمیدن و وجدان کاری و انظمات اجتماعی در برنامه ریزی برای مردم اینها رو مده نظر داشته باشد چارم چارشنبه سدوه ماه آبان ماه مصادق با پنجم ماه سفر سار روز شهادت حضرت روغیه سلام الله علیها دختر عبا عبدالله الحسین علیه السلام در شهر شام هست حرم حضرت روغیه در شام سند حقانیت و مظلومیت حضرت عبا عبدالله علیه السلام است. که هنوز این دختر سالی عبا عبدالله برای اجابت دعوت پدر, دعوت پدر بزرگوارش که فرمود حل من ناصر ینسرونی یا سرباز می و مدافعان حرم لبه گویان این ندا هستند و سقاه پاسداران انقلاب اسلامی در رأس این مدافعان حرم در منطقه برای رضای خدا و عزت اسلام و کمک به مسلمین قیام کردن درود و صلوات خدا بر شهده و جانبازان و ایستارگران مدافع حرم و لعن و نفرین بر دودمان بنی اومیه و استمرار فکری و فرهنگی اونها در این زمان یعنی وحابیون و تکفیری ها و داعشی ها پنشنبه چهار آبان ماه و روز اعتراض و افشاگری امام و اممت علیه پذیرش قانون ننگین کاپیتلوسیون در سال 1342 است مردم عزیز نگاه آمریکا از همون ابتدا تا کنون به همه کشورها به خصوص به ایران نگاه ارباب و رعیتی بود ولی فریاد آن روز امام علیه کپیتلاسیون ولبی که امت اولین پاسخ کوبنده رو به این رژیم کار داد و این توضیح مشخص میشه اونچه که این روزها از ناحیه رژیم امریکا اتفاق افتاده و با واکنش های روبرو شده چیز تازه این نیست حمله اونها به ملت ایران به سفاه پاسداران عزیز اینها در واقع به لحاظ اون از که به تعبیر حضرت آقا در ملاقات با نخبگان جوان اینا از توانی هستند از شما ملت ملتی که توانسته در منطقه منطقه سر بلند کنه برای او ناخوشایند است این خلق و خوی رژیم جنایتکار و کودتاگر آمریکاست که از ابتدا تا کنون در اشکال مختلفی خودشون نشون دادند ها بعد از فروپاشی شوروی سابق علاوه بر آن خلق و خوی خودشون دوچار توهم قدرتی مطلق در جهان هم شدند و از زمانی که دیدن کشور ایران که روزی به خاطر خیانت رژیم پهلوی در غل و زنجیر آمریکای مستکبر قرار داشت به برکت اسلام و احلویت علیه مستلام و رحبری حضرت امام و همراهی مردم قل و زنجیرهای اصارت رو پاره کرد و رها شد و فریاد براورد نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی خواب بر امریکا از این فریاد مردم و از این استقلال تلبیشون آشدفته شد و از اون زمان تا کنون با نقشه های گوناگون در فکر دوباره به در آوردن مردم ایران هستند امروز رئیس جمهور آمریکا تاکتیک بولدری رو چاشنی دیوانگی کرده و با این روش میخواد هر مسئله داخلی و خارجی و خودش رو حل کنه هدف ترامپ از این یاوه‌گویی‌ها آن است که دل ادعی را در داخل کشور بلرزاند و بگویند به این دیوانه چیزی بدید که دست از کار خطرناکش برداره دلالی این کار رو هم با هماهنگی کامل به اروپاییان سپردن و نظام هوشیار باشن همونجوری که حضرت آقا در دیدار نخبگان جوان بایشون فرمودن از مکر و اینها در امان نباشن وجود دست چودنی آمریکا رو در دستکش مخملی محملی اروپا ببینن دل مسئولین ما از این تهدیدها و دیوانه‌بازی‌ها نلرزید شما مسئولین نظام با قاطعیت و توکل بر خدا و اعتماد به این ملت ولایت‌دار به رژیم جنایتکار آمریکا بگویید جمهوری اسلامی ایران تا به حال دیوانه‌تر از تو و سر جای خودش نشانده و تو را نیز سر جای خودت خواهد نشان. سپاه قهرمان ما موضع میگیریم ملاحظه فرمودی در سخنان فرمانده معظم سپاه جناب جعفری و حرکت هایی که در منطقه طرف از طرف سردار بزرگوار نظام و انقلاب سردار قاسم سلیمانی انجام میشه خواب رو بر اینها آشخته کرده مناطقی که تحت تمه آمریکا بود هر کدوم از این منطقه ها چومه ای بود بر امریکا امروز از دست اونها بیرون آمده آری که سپاه در دل مردم ما جای دارد سپاه با قدرت لایزال الهی و وابستگی به فرماندهی معظم کل قواه حضرت امام خامنه ای مدت دل را دارد که منطقه را از شما فاسدان مفسدان، گمراهان امریکایی ها سهیونیست پاک کنه و تمام نقشه های شما را به ازن خدا سپاه پاسداران بر آب خواهد داد. من تذکر با توجه به محرومیت مسلمانان مظلوم میانمار و هایی که به ایشان شده هم از کشدار سلب به شهروندی و اخراج از کشور به حمایت جدی مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید به که ملت شهید پرور و انقلابی غم نیست کمک های خود روک واریز کنن و انشاءالله به این مردم عزیز کمک کنن اللهم افرل المؤمنین و المؤمنات وله هر ودگار را عزت اسلام و مسلمین را روز افسون بفرما مقاف جهانی را به همه مسلمین اطبع مکر و چید دشمنان را به خودشون بازگرداند رحمت عظیم و شعن انقلام مسئولان نظام در روح تحقق و آرمانهای اسلام توفیق مضاعف مرحمت بفرما روح متحر امام شهده گذشتگان مراجع مازین قریق رحمتت بفرما فریزان اسلام جنبازان عزیز استاد مرحمت بفرما باران رحمت رو بالما نازل و ما رو شکر گذار قرار بدهد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زاجا نصر الله والفتر. و الفتر و الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك ربک و استغفره اندهو توابا صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم و رحمت الله و